ششم زوال تدریجی تفتیش عقاید تفتیش عقاید و نفوز آن به طور ناگهانی و در تاریخ معینی پایان نیافت، بلکه در یک دوره بیش از یک قرنی، رسمیترین نهادهای تفتیش عقاید نظیر زندانهای آن و تحقیقاتش در مورد درست اندیشی دینی، در جاهای مختلف، در نتیجه جنگها و عدم استفاده، قدرت ارعاب خود را از دست دادند و به تدریج از میان رفتند. چشمگیرترین و قطعیترین حمله فکری به اصول بنیادی تفتیش عقاید با انقلاب سال 1789 فرانسه همراه بود. بسیاری از مردم فرانسه عقیده داشتند که کلیسای کاتولیک و بازوی قدرتمند غذایی آن تفتیش عقاید در جلوگیری از ظهور عقاید آزادی‌خواهانه و دموکراتیک شدن حکومت فرانسه با شاه و دربارش متحدند آنها عقیده داشتند که نه تنها در فرانسه بلکه در سرتاسر سر اروپا این اتحاد بین منافع کلیسا و سلطنت به صورت مانعی در برابر عملی شدن عقاید جدید در خصوص آزادی مذهب، ادالت سیاسی و برابری اجتماعی عمل می‌کند همین که سربازان شهروند فرانسه پهنه اروپای غربی را از اسپانیا، ایتالیا، اتریش و پروس گرفته تا کشورهای پی یعنی هلند، بلژیک و لوکزامبورگ در نوردیدند، اصول انقلابی روداری دینی و آزادی مذهب را به همراه بردند و آنچرا که در خارج موعظه می‌کردند، در فرانسه به اجرا گذاشتند. در نتیجه انقلاب فرانسه، برای نخستین بار یهودیان فرانسه در کنار کاتولیکا و پروتستان‌ها به عنوان شهروند به رسمیت شناخته شدند و اینک برای نخستین بار امکان دسترسی برابر با دیگر شهروندان به فرصتهای شغلی برایشان فراهم شد این عقاید جدایی چشمگیر از اصولی بود که طی هزار سال بر بیشتر اندیشه غربی حک فرما بود در گذشته فردگرایان خطری برای جامعه تلقی می‌شدند آنها را به دام میانداختند، ساکت یا نابود میکردند. ناگهان امکان پذیر و اقلانی بودن همزیستی عقاید گوناگون در وجدان آدمی نقش بست. فرانسوی ها نهادهای تفتیش عقاید را ویران کردند. سربازان انقلاب آنچرا که برای مردم فرانسه ضروری می در هر جایی که سپاهیان فرانسه با موفقیت وارد شدند به اجرا درآوردند. از آن گذشته سربازان فرانسوی هر جا که با نهادهای دستگاه تفتیش عقاید برخورد کردند به آنها حمله بردند این به ویژه در اسپانیا و ایتالیا مستاق داشت که در آنجا دستگاه تفتیش عقاید بیش از هر جای دیگری دوام آورده بود سربازان فرانسوی زندانهای تفتیش عقاید را ویران کردند زندانیان آنها را آزاد ساختند مأموران تفتیش عقاید را خار و صرف‌کنده کردند و چندین بار گاری سند به دست آوردند اسنادی را که از بین نبرده بودند در جاهای امنی قرار دادند تا بعدها به عنوان مدرک جنایاتی که کلیسا مرتکب شده بود از آنها استفاده شود پس از آنکه فرانسویها اسپانیا را به تصرف درآوردند ناپلان بناپارت ستاد فرماندهی خود را در نزدیکی زندان دستگاه تفتیش عقاید در مادرید برپا کرد و به سربازانش دستور داد مراکز تفتیش عقاید مسئولان آنها اسنادشان و دارایی اداره مقدس را بگیرند گفته می شود که سربازان فرانسوی هنگام ورود به کاخ دستگاه تفتیش عقاید در مادرید کشف فوق‌العاده‌ای انجام دادند به نوشته ی تاریخدان نورهی یکی از افسران فرانسوی پس از جستجوی بیهوده برای یافتن سیاه چالهایی که در موردشان شنیده بود سنگفرش تالار بزرگ را برداشت و در زیر زمین سلول و اتاقهای شکنجه را کشف کرد. شهرت یافت که فرانسویان قربانیانی را در میان مردگان زنده یافتهاند. در اینجا بود که گفته می سربازان ابزار شکنجهی معروف به باکره آهنی یافتند یک مجسمه مریم باکره که جلوی آن پوشیده از میخا و دشنهای نپتیز بود دستهای این پیکره را میشد حرکت داد تا قربانی را آنقدر جلو بکشد که میخا و دشنها به بدنش فرو رود. بد. این یافته صرفا به افسایش وحشتی کمک کرد که فرانسویان با آن به دستگاه تفتیش عقاید مینگریستند. و زدیت آنها را با تمام آنچه آنها در خصوص کلیسا ضد انقلابی می دانستند توجیه کرد در سال 1813 که سایر ملل اروپایی سرانجام ناپل اون را شکست دادند و او را از قدرت راندند در بسیاری نقاط نهادهای قدیمی از جمله دستگاه تفتیش عقاید به صحنه بازگشتند در اسپانیا پادشاه پس از بازگشت به قدرت سپریما را در سال 1814 احیا کرد، اما شش سال بعد انقلاب پهنه اسپانیا را در نوردید و دستگاه تفتیش اقای در اسپانیا در سال 1820 بار دیگر منحل شد. دادگاه عقیده با وجود این، نهادی که دادگاه عقیده نامیده می شد، در سال 1823 وارد صحنه شد، این دادگاه نیز مانند مرجع عالی برای نظارت بر راست کیشی مردم در اسپانیا در نظر گرفته شده بود اما عملکرد متفاوتی داشت نشانه دوام افکار تفتیش عقایدی این بود که حکومت اسپانیا چندین بار دست به تلاش‌های ناموفقی زد تا ناتوانی در برپایی اداره دولتی مربوط به تبارهای ناخالص را برطرف سازد پرتغال نیز مانند اسپانیا به پیگرد بدعتگزاران تا نیمه قرن 19 هم ادامه داد. انقلاب آزادی خواهانه ای که اسپانیا را در نوردید در سال 1821 پرتغال را نیز تکان داد و تفتیش عقاید را موقتاً از صحنه بیرون راند. اما اداره مقدس در سال 1852 در یک مجموعه قوانین مذهبی وارد صحنه شد که درست به اندازه قوانینی که چند دهه قبل از بین رفته بود، نابرد بار و آمیز بود. در پرتغال نیز مانند اسپانیا، افکار تفتیش عقایدی در سرتاسر قرن سر نوزدهم به تأثیر بر حکومت غیر مذهبی به شکلی ادامه داد. در ایتالیا، بقایای دستگاه تفتیش عقاید به دست سپاهیان فرانسه نابود شد و پس از شکست ناپلئون، که برخی عناصر تفتیش عقاید بازگردانده شد، این عناصر اختیار بسیار محدودی داشتند پس از شکست فرانسه بسیاری از ایتالیایی ها همچنان دستگاه تفتیش عقاید را تجاوزی به حقوق خود به عنوان ونیزی فلورانسی میلانی و غیره میدانستند. درست همان طور که طی قرن چون چنین نظری داشتند روم یک مورد استثنایی بود چرا که مقر پاپ بود تفتیش عقاید در روم تا سال 1852 ملغی نشد و در این هنگام بود که به عنوان بخشی از جنبش برای دستیابی به یک پارچگی ایتالیا منسوخ اعلام شد. دارایی اداره مقدس را شاه در اختیار گرفت. زندانیان دستگاه تفتیش عقاید روم آزاد شدند و بیشتر اسناد بایگانی آن سوزانده شد. که باعث رنجش محققان آینده تاریخ تفتیش عقاید در روم گردید. در آمریکای لاتین دستگاه تفتیش عقاید اسپانیایی تا موقعی که اسپانیا مهاجرنشینهای خود را تحت انقیاد داشت به تسلط اکید خود بر زندگی مردم ادامه داد. در بخش نخست قرن 19 مهاجرنشینها به تدریج استقلال خود را از اسپانیا به دست آوردند و در نتیجه تأثیر رسمی دستگاه تفتیش عقاید بر زندگی مردم کاهش یافت. با این حال مردم آمریکای لاتین برخلاف همتایان اروپاییشان همچنان زیر سلطه مشترک و قدرتمند کلیسا و دولت باقی ماندند. آرای انقلاب فرانسه که به میان مردم بهتر آموزش دیده و بیشتر صنعتی شده اروپا عمیقا راه یافته بود در دنیای جدید نفوذ کمتری داشت. در نتیجه بقایای دستگاه تفتیش عقاید که نفوذ روحانیت کار در زندگی بسیاری از مردم در آمریکای لاتین نمایانگر آن بود، در اواخر قرن بیستم نیز هنوز مشهود بود. به طور کلی، به رغم بقای برخی نهادهای محلی، انقلاب فرانسه در ویران کردن نهادهای فیزیکی دستگاه تفتیش عقاید نقشه بسیار مهمی ایفا کرد. بیست و پنج سالی که سپاهیان فرانسه اروپا را در مینوردیدند زندانها آرشیفها و ابزار آلات شکنجه از بین رفتند از این رو حتی در دوره ارتجایی پس از سقوط ناپل اون با سازی دستگاه تفتیش عقاید به صورتی که قبلا وجود داشت ناممکن بود فهرست پاپی زدودن آرایی که انقلاب فرانسه ارزه کرد نیز ناممکن بود با این حال کلیسا کوشید کرد تا این کاری را انجام دهد کلیسا می‌خواست عقربه ساعت را به زمانی بازگرداند که از طریق تسلط بر آثار مکتوب بر افکار عمومی تسلط داشت در این عرصه تفتیش عقاید از طریق کارکردی مشهور به فهرست پاپی فهرست رسمی کتاب‌های ممنوعه از نظر روم تا قرن بیستم دوام آورد فهرست پاپی در اصل فهرست مطالب خواندنی یعنی ممیزی شده بود که در سال 1559 در روم تهیه شد در آن سال پاپ لئوی دهم اعلام کرد که در تمام زمانهایی که میآید هیچ کس نباید کتاب یا نوشته دیگری را چه در روم و چه در هر شهر یا اصخف نشین دیگر چاپ کند یا سبب چاپ آن شود مگر نخست به تصویب و تایید قائم مقام پاپ بر رئیس کاخ مقدس در روم یا اسخفها یا کسان دیگری که درک علمی دارند در شهرها و اسخفنشینهای دیگر رسیده باشد کتابها یا نوشتههای در نظر گرفته شده برای چاپ باید از سوی اسخف یا نماینده او و از سوی مامور تفتیش انحراف بدعت در شهر یا اسخفنشینی که قرار است به چاپ سپرده شود مورد بررسی دقیق قرار گیرد و با امضا و دستخط خودشان مورد تصفیه واقع شود و بدون حق و زحمه بدون تأخیر و بر اساس حکم تکفیر تحویل داده شود. فهرست برای کنترل افکار رفت. قصد از فهرست جلوگیری از رسیدن های خطرناک به ویژه پروتستان پروتستانها یا حاوی مزامین ضد روحانی به دست مردم بود. دستگاه تفتیش عقاید در روم یا اداره مقدس گروهی از سانسورچی ها را به وجود آورد که وظیفهشان این بود که تعیین کنند کدام نوشته ها در رده خطرناک قرار می‌گیرند. این مطالب در فهرست پاپی جا داده می‌شد. در سال 1571 پاپ پیوس 5 مجمع فهرست را به وجود آورد که اداره جداگانه‌ای برای نظارت بر فهرست بود با وجود این تیه قرن‌ها دستگاه تفتیش عقاید مراقب انتشار مطالب زاله و خرابکارانه بود هزاران کتاب در فهرست پاپی قرار داده شد آثار معلفانی چون اراسموس ساوانارولا ماکیاولی و بوکاچیو ممنوع شد بخش از آثار معلفان دیگری چون دانته به ویژه سانسور شد و بعضی قسمت های مشکل آفرین می بایست پیش از انتشار حذف می شد اگر چه گاهی به طور خصوصی دست به دست می گشت. آثار علمی به ویژه گرفتار سانسور بود. بیشتر آثار مردان بزرگی چون کپرنیک، کپلر و گالیله از طرف کلیسا محکوم شد و برای سالها اجازه انتشار نیافت. شاعر نابینا جان میلتون که در انگلستان از گزند دور بود، توانست تلاشهای دستگاه تفتیش عقاید برای کنترل افکار مردم را به ریشخند بگیرد. برای پر کردن کامل پیمانه این دستندازی و تجاوز، آخرین اختراعشان این بود که مقرر کنند که هیچ کتاب جزوه یا روزنامه ای نباید چاپ شود، مگر از طرف دو یا سه به شکنباره تصویب و اجازه آن داده شود. نظارت بر عقاید به صورت موضوعی بسیار جدی ادامه پیدا کرد. دیگر کشورهای کاتولیک که شاید از بگمانشان ملایمت و مدارای فهرست پاپی ناخرسند بودند، فهرستهای خودشان را از کتابهای ممنوعه تهیه کردند. مثلا در اسپانیا این فهرست بسیار طولانی تر و گستره موضوعهایش بسیار وسیتر از فهرست تهیه شده در روم بود. منع انتشار برخی کتابها در روم، اسپانیا و جاهای دیگر یک تأثیر جانبی جالب توجه داشت. در جاهایی که این من یا وجود نداشت یا با قاطعیت اجرا نمیشد، صنعت چاپ شکوفا شد. از این رو در حالی که در روم بیش از چند کتابی منتشر نمیشد، از میانه قرن هم به بعد در ونیز، سوئیس و جاهای دیگر یک صنعت پر رونق به وجود آمد که برای خوانندگان مدام در حال افزایش کتاب تولید می کرد. انگلستان جایی که تفتیش عقاید در آن هرگز برپا نشد، خزانه مجموعه گسترده ادبیاتی شد که دستگاه تفتیش عقاید طی 400 سال نخست آن را ممنوع کرده بود. این امر بدین سبب رخ داد که توماس جیمز، دانشپژوه معاصر میلتون، در اوایل قرن هفدهم، تمام فهرست‌های کتاب‌های ممنوع اعلام شده در سرتاسر اروپا را گردآوری کرد. سپس پیشنهاد کرد که کتابخانه بودلین در آکسفورد از هر کدام از کتاب‌های فهرستها یک نسقه به دست آورد. به دین ترتیب، این گنجینه نگهداری شد. تاریخدان ادوارد برمان می‌نویسد. اگر دستگاه تفتیش عقاید در موقعیتی بود که بتواند در سرتاسر سر اروپا حتی سرتاسر سر کشورهای کاتولیک سانسوری را برقرار کند که به اندازه سانسور تحمیلی در اسپانیا مؤثر باشد نابودی کتابها چنان قابل ملاحظه می بود که بین ادبیات غرنهای مختلف گسستی جدی ایجاد می‌شد با آنکه با گذشت زمان بیشتر وجوه تفتیش عقاید به تدریج اهمیت خود را از دست داد یا به کلی از بین رفت یک فهرست رسمی جدید از کتاب‌های ممنوعه در سال 1948 از طرف اداره مقدس انتشار یافت خود فهرست در سال 1966 به حالت تعلیق درآمد اما منتفی نشد درس‌های تفتیش عقاید دستگاه تفتیش عقاید کوشی طی چندین قرن از هان میلیون ها نفر از مردم را با استفاده از آنچه ما امروزه نهایت اشکال سنگدلی می دانیم کنترل کند شاید صدها هزار نفر از مردم به چنگ اداره مقدس افتادند اما در نهایت دستگاه تفتیش عقاید شکست خورد شبکه گسترده ادارات، زندانها، خبرچینها و معموران تفتیش عقاید آن دیگر وجود ندارد. در واقع، تاریخ تفتیش عقاید را حتی میتوان یک منبع امید دانست، چرا که به قول تاریخدان برنارد همیلتون نشان میدهد که ایمان و عقیده اجباری ناممکن است. دستگاه تفتیش عقاید توانست در محدوده ای همانندی و تعبد ظاهری را تحمیل کند، اما هرگز موفق نشد یک جهان مسیحی یک پارچه با یک عقیده واحد که هدفش بود به وجود آورد. تاریخ آن شکست بخش با ارزشی از تجربه اروپای غربی را تشکیل می دهد. از سوی دیگر شاید درسهای کمتر خوشبینانه ای از مطالعه تاریخ تفتیش عقاید حاصل آید. انسانها به فرض داشتن توانایی اعمال قدرت بر دیگران، در اعمال خود کمتر داری نشان داده اند. دستگاه تفتیش عقاید مائل بود انسانهایی را که اندیشه و اعتقادشان آنگونه نبود که صاحبان قدرت می‌خواستند به چوبه مرگ ببندند و بسوزانند. در این زمینه کلام موجز فیلسوف بزرگ کاتولیک انگلیسی لورد آکتون می‌تواند روشنی بخش باشد. قدرت به فساد تمایل دارد و قدرت مطلق مطلقا فاسد می‌کند. با در نظر گرفتن این عقیده شاید بتوان گفت تاریخ تفتیش عقاید به هیچ وجه نوعی کجروی یا ناهنجاری نیست بلکه شاید فقط نمونه دیگری باشد از کسانی که میکوشند برای تحمیل عقاید خود بر دیگران به زور و وحشیگری متوصل شوند و شاید نمونه آشکار دیگری باشد از سرشت انسانها. تاریخ نگار رومی تاکتیتوس گزارشی شگرف از نحوه رفتار امپراتور نیرون با مسیحیان پس از آتش سوزی بزرگ روم در سال 64 میلادی بر جا گذاشته است. آنها را در حالی که در پوست حیوانات وحشی کرده بودند، سکها تکپاره می کردند یا به صلیب می یا داخل مشعلها می کردند تا پس از تاریکی به جای چراغ روشن کنند. نیرون باغهایش را برای نمایش با شکوه آماده کرد و نمایشها را در سیرک به اجرا درآورد آورد که در آن با جمعیت درامیخت و یا در حیعت یک عرابران در عرابه ایستاد. نوادگان همان مسیحیانی که در مشعلهای انسانی به آتش کشیده شدند هزار سال بعد با کسانی که کلیسا را به زیر سؤال بردند به همان طریق رفتار کردند. نمایشی که نیرون برپا کرد با کار مفتشانی که در تابستان سال 1680 برای مردم مادرید نمایش با شکوه اجرای احکام را به صحنه آوردند هیچ تفاوتی نداشت. قرن بیستم به جای آنکه موجب وقفه در این روایت وحشتناک از رفتار وحشیانه انسان با انسان باشد شواهدی بر تیره و تار شدن افق آینده به دست داد. تنها کافی است به هیتلر، استالین و فرانکو های کشتار در کامبود، قتل عام در افغانستان، بوسنی، سومالی، رواندا و بروندی بیاندیشیم تا نمونههایی از عدم تحمل تمایزات مذهبی و قومی را در نظر آوریم. آنچه ما را از نیاکانمان جدا میسازد، شاید صرفاً افزایش کارائی تکنولوژی باشد که با آن یکدیگر را قتل عام کنیم. با توجه به تاریخ تفتیش عقاید شاید به زحمتش بیازد که این وجه خفناک طبیعت انسان را مورد توجه قرار دهیم.